بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلمين وأله وصحبه أجمعين أما بعد نهمن درس أسس درسية السور يوسف عليه الصلاة والسلام آي يبيسيكم آي يبيسيكم السور يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض ونعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر قبیوسف کاروانی قافله میات اور از شاهر میاره پنهانش میکنه کسی از قافله جزء اون چند نفر نفهمند که اینو رو پیدا کردن چون نخریده بودن سری همردش کردن با اندک قیمتی اومدن مصر فروخت اون کسی که مصر در مصر او را خرید و قال الذي اشتراه من مصر اون کسی که در مصر چون یوسف علیه السلام فلسطین زاده است اون قافله از سرزمین شام از فلسطین عبور می‌کرد یوسف را پیدا می‌کنن و می‌برن به مصر در اونجا او را می‌فروشن اون کسی که او را خریده به همسرش میگه به زنش ل به زنش میگه اکرمی مثواه اکرامش کن این اکرامی که الله اینجا داره یاد می‌کنه از حکمت این مرد مصریه بچه نداشته و نیاز خودش رو به بچه هم میدونسه هر کسی از ما میدونه نیازش به بچه چون میدونیم یک روز پیر میشیم شاید زمینگیر بشی بالاخره انسانه همونطور که جوانه تنومنده یک روز هم میرسه که پیر میشه در اون پیریش نیاز داره که کسی بهش اهمیت بده خاطر همین مثلا ما در دعای زکریا میبینیم باره الله من پیر شدم و نیاز به بچه دارم از الله بچه میخواد با وجود که پیر شده ولی امید و اتمع به رحمت الهی داره بحث احتیاجه نیازه اینجا این مرد مصری به همسرش میگه این بچه را اکرامش کن اکرامش کن در لباسش اکرامش کن در غذاش اکرامش کن در تربیتش یعنی اهمیت بده با روی خوش با رفتار نیک بچه هست خوبیه تو را میبینه خوب تربیتش کن اکرمی مثوا. خوب تربیتش کن نیک درستش کن خمیر اون بچه بچه‌ای که با شوتو لگد تربیت میشه همون بچه هم همون برات پس میده وقتی که بزرگ میشه توقع نداشته باش اون بچه‌ای که ازت خوبی ندیده بهت خوبی بکنه پس این قاعده کلی را الله داره اینجا بهمون یاد میده از زبان این فرد بچه باید پرورش بشه تربیت بشه اونم با نیکی با رفتاری درست با نرمی با اخلاقی نیک رفتاری درست اکرمی مثواه اکرامش کنه کلمه اکرام که الله در تعیید این قضیه داره یاد میکنه در تعیید این فعل نیک بنوانی یک وظیفه پدری و مادری این وظیفه است اکرام کردن نه اهانت کردن هر کلمه ای که در تضاد بایده نه معادلش ها معادلش اخلاق نیکی رفتار درسته ولی در تضاد کلمه اکرام احانت توبیخه سرزنش نکوهش کتک تحقیره بر خلاف این اینجا ما می‌بینیم که توصیه میکنه این مرد مصری که همسرش با یوسف تعامل داشته باشه چرا اکرمی مثوا عسى این ينفعنا تا به دردمون بخوره عسى معلومه در قرآن به معنای تاکید میاد نه به معنای احتمال تا به درد من بخوره خوب تربیتش بکن تا به درد من بخوره این نتیجهش به درد خودت می‌خوره فردا نتیجه‌اش برای خودته اگر بد تربیت کردی دوت تو چشم چشموتی میره؟ چشم خودت. اهمیت ندادی بهش، نه به واسش، نه به تنش، نه به دینش، نه به حلال و حرامش. چی توقع داری فردا بچت بشه؟ فردا معتاد شد فردا هر کار خلافی انجام داد، دزدی کرد. پای تو تمام میشه، تو بد تربیت کردی. خوب تربیت کردی، منفعتش به جیب خودته. تو خودت سود میبری فردا ازش. تا اینکه ازش پس منفعت ببریم خوب با تربیت میکنیم تو ازش منفعت بگیریم. او نتخذه ولدا اینکه یعنی او را بچه خودمون قرار بدیم بچه ما بشه اصلا یا به عنوان یک برده و غلام باش رفتار بکنیم ولی خوب تربیتش بکنیم حرفه یادش بدیم که به دردمون بخوره و یا اینکه اصلا بچه بشه چرا بچه‌مون نشه این قضیه بود در جاهلیت در زمان رسوله هم صلی اللہ بود که شر اومد من کرد شخصی مثلا بچه را می خرید، دیگه بچه خودش میشد و برس می برد و الى آخر محرمشون بشد اینچینی چیزی در اسلام دیگه نیست بلی خب در ادیان گذشته بوده در یهودیت بوده می خریدن و بعد بزرگش میکرده و بنامی بچه خودشون باش تعمل میکردن اینجا ارزش یه بچه هست به عنوان یک نعمت اینا فاقد این نعمت بودن یک بچه بچه های ما نعمت یهن یعنی که الله به ما ارزانی داشته بچه نعمته نعمت را آدم حیف و میل نمی کنه. دورش د بی توجه بهش نمیشه نعمت نعمت را آدم سپاسش رو به جا میاره یعنی چی طلا را آدم کجا میذاره جا کلیدی سیویچ ماشینش قرار میده کلیدش قرار میده دورش میندازه زیر دست پا میاندازه نه طلا ارزش داره قدرش رو میدونی قاب صندوقی براش میگیری در کمود میذاری در کومودو قفل میکنی چون ارزش داره بچه ارزش داره برای ما و این ارزش نیاز به اهمیت داره توجه داره و کذلک مکنن لیوسف فی الارضی ولنعلمه من تأویل الاحادیث و کذلک مکنن لیوسف تمکین تمکین یعنی به یوسف جایگاهی دادیم جایگاهی منزلتی داریم در حس و معنا در قلب و در عمل یوسف از جایگاه بالایی برخوردار شد اون جایگاه قبل از این که در عمل باشه در ها بود هر دلی اسیر و شیفته یوسف می یوسف محبوب ها بود تمکینه این محبوب دل شدن از کجا اومد؟ چطور میاد؟ که آدم محبوب بشه وقتی که آدم محبوب بشه وقتی که آدم خوب بشه زیر چشم شخصی اکرامش میکنه. بهش خوبی میکنه. خب این قضیه رو خوب این فردمسلی درک میکرد مثلا این بچه نجابت داره مثلا نجابت از قیافه و شکل و شمایل و رفتارش مشخصه تعاملش با ادب قبل از بزرگتر بلند نمیشه احترام داره تقدیر داره بزرگتری میفهمه کوچکتری اصلا این با بچه مردم با دیگر مردم اصلا تفاوت داره این تربیت تربیت عادی نیست می‌بینی در رفتار چون تربیت شده یک پیامبری اونم یعقوب علیه السلام این نجابت را که می‌بینه خود به خود سبب میشه که چی احترام بهش بذاره احترام متقابل وقتی که انسان نجابت رو میبینه از یک بچه اکرامش بفرماید بچه اینجا بشی ولی وقتی که اون نجابت رو آدم نبینه شو برو جات اینجا نیست چرا آمدی پیش بزرگتر آنش هستی خب این انسان درک میکنه ولی خب اون اثر تربیت بد ماست ما اینشنین با تحقیر داریم تربیت میکنیم که نباید باشه تربیت درست از یعقوب نتیجهش و تمکین معنایی و حسی سن دلنشین میشه یوسف با اون اخلاق و رفتارش آدم اسیرش میشه سیر نمیشه ازش با اون سخن درستش با اون اخلاق رفتار نیکش این تمکینی که الله یاد میکنه از یوسف جایگاهی که در یاد میکنه در دل های طرف در زندگی روزمره طرف دیگر و کذلک مکن یوسف فی الارض شما نگاه بکنید کی او را میخره؟ وزیری از وزرا؟ همه این وزیر میشه برو بخر برو بیا هرچی پول داره دار و ندار داره میده دستش تو خونه رهاش میکنه با همسرش امنیت تام ازش داره احساس امنیت میکنه در یوسف کل دار و ندارش داره دست یوسف مکن نه این تمکین اولی برای یوسف جایگاه مقام اولی که یک وزیری میاد کل زمام امور زندگیش رو دست یک بچه میده خب این انتخاب الهی این توجه الهی به یوسف بعد از اونم دیگه که وزیر خزانه امپراتوری مثل میشه ولی نعلمه من تعویل الاحادیث خب اینها سلسله مراحل بود که طی شد هم چنان داره یوسف یاد میگیره اینها سبب شد که بی یوسف هم تعبیر خواب یاد بدیم بیشتر مفسری میگن لنعلم من تعویل الاحادیث یعنی تعبیر خواب و رؤیا چون تجربه ها هست که سبب میشه که انسان رمز و خواب را یاد بگیره و خوب بتونه تعبیر بکنه کلیدها واژه ها داره در قرآن که بات توجه به اون کلیدها انسان میتونه خواب رو تعبیر بکنه من مثلا یک مثالی به تو میزنم شخصی میاد میگه دیدم در خواب چوبی رو از اینجا گرفتم به جای دیگر انتقالش دادم چوب رمز خواب شد چوب چوبی رو برداشته از جای دیگر یا بریده یا جا جوکفشی درست کرده این کلمه چوب کلمه چوب رمزی میشه در خواب کسی که از قرآن نمیدونه نمیتونه تعبیر بکنه این کلید واژه رمز قرآنی داره رمز قرانش چیه که انهم مسنده منافقین هم چون چوبی خشکین وی که در خواب بدون که اون شخصی که باش داری تعامل میکنی منافق صفته مثل چوب خشکه خب من این تعبیر خواب را از کجا آوردم رمزش کلیدش کجا بود قرآن یوسف از بادیه‌ای از یک روستای بلند میشه از فلسطین میره در یک شهر یک کمبراتوری صاحب تمدن بودن انواع حرفه داشتن از نجاری گرفته از زراعت گرفته از مهندسی گرفته همه چیز داشتن اهرامای مثل معروفه مهندسانی برای خودشون داشتن اینها سبب میشه که تجربیات یوسف بیشتر بشه و یوسف تمکن علمی پیدا بکنه در تعبیر خواب ورزیده بشه کارپشته بشه در علم تعبیر خواب والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره بدون ای محمد از آن الله پیروزی از آن الله الله با تو باشه تو نصرت مییابی الله با یوسف بود که اون سرتیوف به پادشاهی مصر رسید والله غالبو ببینید کی پادشاهی رسید یوسف یا برادرانش اونها 10 تا بودن این یک یک نفر بود کم فئات قلیله غلبت فئات کثیرا یک نفر بود ولی که به این مقام و جایگاه داره میرسه اینجنین داریم یادش میدیم اینجنین داریم جایگاه بهش میدیم چه جایگاه دینی چه جایگاه دنیاوی. جایگاه دینی قسمتش تعبیر خوابه تا شخص درایت نسبت به علوم شرعی دست باشه نمیتونه تعبیر خواب بکنه الله کمکش میکرد یاریش میداد با وحیش با الهامش والله غالب على امره بدنا محمد تو را هم تمکین خواهیم داد تو هم عزت مییابی نگاه این آزار و اذیت مشرکی نکن اونها سرنگون میشن تو عزیز میشی همون که یوسف عزیز شد عزتت هم همین همچون راه یوسف با اون نجابت و اخلاق و رفتار و کردار درست نجیب شدی درست شدی نیکو شدی تو را عزت میدیم اگر نجیب نشودی خوب نشودی نیک نشودی رفتار و درست نشود این چنین مقامی جایگاهی بهش دست نمییابی ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مردم غافلان نمیدونن این قضیه رو نمیدونن که عزت در دینه نمیدونن که چی عزت در دینه نمیدونن بیشتر مردم نمیدونن دین به انسان عزت میداد مردم درش ذوق داره نمیخوان بچه‌ش مولا بشه نمیخوام دین دیندار بشه نمیخوام بچه‌ش رو به طاعت و عبادت بیاره بیشتر مردم چی نه در صورتی که دنیای مردم بدون دین اصلاح نمیشه شما در نظر بگیرید ملایی نبود شما چطور ازدواج می‌کردید چطور طلاق می‌داد ازدواجشون طلاقشون ارث و میراثشون حلال و حرامشون نمازشون چطور نماز می‌خوندن باید یک کسی علم شرعی رو یاد میگرفت تا بهمون به یاد میداد تا حلال از حرام میدونید تا میدونی پدر مادر چی احترام چیه حقوق چیه هل که نباشه دودش چشمیون جامعه میره دیگه فردا کسی دزدی کرد، فردا کسی دوچار قتلی شد، کسی را کتک زد، آزار را ازیتی کرد، حق همسای را به جانه حق اون فقیر مستمن را به جانه برد. اینها تابانی هست که جامعه باید پس بده در مقابله عدم اهمیت دادن به علم شرعی، علم شرعی به انسان عزت میده باید در جامعه کسانی باشن که اهمیت بدن به علم شرعی و به مردم بازگو بکنن و بگن به مردم بیشتر مردم پس نمیدانن ارزش بهش نمیدن در غفلتن یعنی این قصه رو داریم بهتون میگیم ای مردم تا این قضیه رو درک بکنید قصه یوسف به خاطر چیه به خاطر اینکه بدونید جایگاه علم دینی علم شرعی حسن آیه بعد این قضیه رو می کنه. ولما بلغ اشده واتایناه و علما وقتی که تنش و جانش آراسته شد به سن بلوغ رسید ما هستیم الله که بهش حق دارین که حکمت نبوته و علم دارین او را مشرف ساختیم با علم علم شرعی اینجا یوسف تکنیسیان نبود مهندس نبود پزشک نبود حرفه دنیوی یادش نداد الله اون علمی که داره بهش یاد میده علم دینیه علم شرعیه وحی الهیه که داره یوسف را یاری میکنه در زندگیش در امرار و معاشش یوسف هم فردی نجیبه ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما ان علم يوسف بود که به سن بلوغ رسید سبب شد نجیب بشه سبب شد رفتارش درست بشه علم پس به انسان شرف میده مقام میده جایگاه میده الله هم متذکرمون میشه یادآورمون میشه که بدونین در تعلیم دین شرافت و عزته و كذلك نجز المحسنين هر کسی خوب شد خوبی کرد جواب خوبی را خوبی ببینید احسان کردی چه در حق همسایه، چه در حق فرزنده، چه در حق پدر و مادرت، چه در حق اون مشتری در اون خرید و فروش و معامله و تجارتت، در هر کاری خوبی کردی خوبی می‌بینی. پاداشت از آن اللهه کذلی که نجزل محسینی، به مثال داری میزنی در قصه یوسف، یوسف فردی نیک، رفتاری درست، تعاملی خوب داره با مردم، دادستتش عالیه، این تعامل درستش سبب میشه که مردم بهش اعتماد بکنه. این وزیر همینطوری خزانه رو دست یوسف میده؟ این وزیر زن و بچه و همسرش بچه که نداش ولی خب همسرش اعتماد داره که با همسرش تو خونه تو منزل تنها هاش میکنه اعتماد این اعتماد نسبت به یوسف از کجا آمد؟ از چکوکشش از قلدریش نه از نجابتش از اخلاق درستش از رفتار نیکش پس رفتار درست و نیک اعتماد میاره وقتی که یک فرد میاد برای شما برای خرید میگه این جنسو قرضی به بده قرض بهش میدی خب بل خب یه روزه دو روزه سعی کنم پولشو بدی میره یک هفته و دو هفته پولتو نمیاره در عهدش بیوفاست بی وجدانه فکرم نمیزنه اصلا که آقا من فلانی منتظره که من برم پولشو ببرم بهم به اعتماد کرده این شخص با عدم این وفای به عهدش بی اعتماد میشه یک نفر دو نفر تو اینکه دیگه در جامعه بی شخصیت بشه هر جا میره نه کسی چیزی ندا این وفای به عهد نمیکنه. خیانت در امانت میکنه. این دزه. این اگر چیزه دادی دیگه بر نمیگردونه. مردم همه ازش برحذر میشن. این پاسخ بدیه. بدی کردی بدی میبینی. خوبی کردی خوبی میبینی. وقتی که وفای به عهد کردی، صادق بودی در حرفت، در وعده صادق بودی در زبان گویشت، حرفت، سبب میشه مردم بهت اعتماد بکنن و این اعتماده رو یوسف کسب کرده. باور اون رفتار درستش سبحانك اللهم و سبحان الله و الحمد لله و صلی الله علی و محمد و آله محمد